همه زلف تو دام کفر و دین است ز کارستان او یک شمع این است جمالت معجز حسن است لیکن حدیث کمزاد سحر مبین است ز چشم شوختو جان کیتبان بود که دائم با کمان اندر کمین است بر آن چشم سیادت آفرین باد که در عاشق کشی سهر آفرین هست عجب علمیست علم حیعت عشق که چرخ هشتمش هفتم زمین است، تو پنداری که بدگو رفت و جان بود حسابش با کرام و است هست مشو حافظ کید زلفش ایمن که دل برد و کنون در بند دین هست.